الحمد لله رب العالمين و الله رسول الله و, و المعصومين و اللهم و که در بحث مباحث خط مطرح شد بحثی است که بین جمله است احلام بعد از شیخ رضوان الله تعالی مفرق شده اون بحث راجعه به اینم که تأثیرات عملی این بحث ها در فقه خیلی زیاد نیست بسه بس باید بس باید جهات نکات خنیز که میتونه در جهات دیگه کارگوشار باشه تأثیر در جهات دیگه باشه بسه این بود که در کلمات متاخرینه بعد از شیخ در تخصیب قطع موضوعی گفتم یا تمام این موضوع اعطی شده یا این موضوع و علاقه تغییر میوزه یا به نحر تریحییت یا به نحر سپکیت یعنی به عبارت دیگر گفتم قطع که در لسان موضوع اعطی میشه سارتن به عنوان تریحییت اعطی شده مراد از تریحییت اگر نظر به واقع باشه اگر نظر به واقع بود قرد فریدیه اگر نظر به صفت فرق بود صفت خاصی در انسان پیدا میشه اینجا به نحر صفتیه اون نحر صفتی دیگه باید شدن که هر کدام یا تمام موضوع یا جزء موضوع یعنی اگر فریدیه بود واقعا جزء موضوع به خود قرد هم جزء هم بود همینجا حالا این که این مقدار چه مقدار در فرق تحصیل دارد بله از خواهم که اون که محل کلام شد که از فرمین نقطه فنی داره که باز اون نقطه فنی شد. کار بشه اون در این مسئله که آیا میشه تمام موضوع و به نحوه طریقی باشه و تمام موضوع از شد که این اشکالی که شده توسط مرموم ناینی حتی از الله ها و استامن که جاگردیشون هستن بایشون معافرت فرمان اما اگر طریقی باشه یعنی واقع در نظر گرفته اگر تمام اون موضوع باشه یعنی خود قطع در نظر گرفته جمع در ها درست نیست اگر واقع در نظر گرفته یعنی قطع در نظر نگرفت اگر تمام اون موضوع خود قطع در نظر گرفت نمیشه جمعه بین این دو در هاست در قابل مرموم نایم مربون آزیا قدس الله و سره ایشون احتمالند اینکه احتمالا دیالا من نموستن دیم چون این تقسیم به تمام موضوع و بعد موضوع در کتاب استادش کفایی مرموم آزیا شده داخلی آیا نایم نیست نم آزیا در کتاب استالش مرموم ساکفایی آمده حالا مثلا این دفاع محنه استاد، ایشون کردن تصویر بکنن که این مطلب ممکن و شاگرد ایشون مرموم استاد دیگر با مرموم آزیا با ایشون موافر مند. با مرموم آزیا من چند بعض از نکات فنی داره این موضوع رو مترس میشین و بعد تصمیه بحثیشون از چون مرموم در خاشیه یه بر فوائد و و در این کتاب نهایت و لفتا که تحضیلات تو بحث تحضیلاتشون سفته کونزه جلسه لیکن تو مقالات این بحث رو ندارد بیشون فرمه لایق با اندر علم و غیر از اون اصطفات و جانیه القاهمت به نفس و امکانت متعلقتن به صورت حاکیتن خارجم ارتباط این صورت رو با خارج و اصطورت لیکن به نحن لایلتفت و الازمیت ها یعنی اون جهت سفتیش نگاه نمیشه فی زلط وجوده وجوده وجود این سفات البته از کارماندی روز توضیحاً از فرقینات حواد جمعی داره ما رو حواد جمعیش بیشتر ترکید داره. این که ایشونگه این و دیگر این سفات نفسانیه که جمعه با از داره. و قرآن حکارت از خالج داره بعضیه هاش یلتفت و الازه ها این که خیلی لا در نصفت هم از کرده. این سفات و نفسانی بعدشی رنگی ندارن فقط جمعه حکارت داره. مثل قطع مثل یفین من این دارم این نافه این, این شیف به اون خالت نفسانی خودم نگاه نمی به این شیف خارجی و نفر شیعه. همه یه بطر قیلت از مثل خوف هم داریم من خوف دارم اگر روزه بگیرم مریض میشن ببیدیم اینجا به این ذهنیتش نگاه نب... میدیم صفت خوفی صفت خاصیه ذهنیت او نگاه میشه این طور نیست که برد اقایتا از خالدی باشه اون ذهنیت هم ملحوظه اینه دیروسوزی دادن باید هم سکرار رو کنیم دیگه نه ذهنیت را دائمان خارج لا یه اتفاق ذهنیت را حضییت سوال و نه, نه دل خارج، دل اما الى ذهنیت ها لا اتعال. و من از با این نمیشه امکنه از تنبع و تفسیری اما این ممکنه درست نگاه نمیشه خارج ما میبین اما ممکنه بگیم برگردید به خریدیشان به نظر ثانوی خودمون به یادت نگاه بکنه مثل عیناً ما عیناً طبیعی داریم که حرفو بکنیم اما گاهی خود بخودرینتم نگاه بکنیم مشکلی نداره که میگه اون صورت ذهنی واقعاً ملارجه نمیشه واقع میشه ملارجه نمیشه اما گاهی ما باز برمیگردیم همون صورت بررسی میکنیم اما به تعبیر ایشان به نظر ثانوی یعنی ایشان تابع مدرسه ثانويہ ولو بہ الہ نقش علم من حیص و کشفی حالا بعضی ممکن تشبوط یاران ال خلافی ذکر کرد بعد تعلقی به خارج و ان خارجه خیرو خارج غیر از این کش یک خارج داریم یک کش و متعلق و و نغای منکشف واقع منکشف لکاش خصوصا در نسبت ایل جایل اللذی حقوق ایل رو پاته یعنی خداوند متعال که مشبر مقنن پدر میتونه بگه اگر یقین جایی نانگاهی بازه براند ببینیم ممکن همون صرفت یقینش نگاه بکنه حیثوان کنه حیثو لبو ولو به نظر الابولی تفکی کل عرم انمتعلقه متعلقه. رو جلا بکنه و هو لحاظ و مفهومه من حیث و عروضیهی علا صبر الحاکیت علا خاطن خارج قبال قیامهی به نفس یعنی چون این صفت دو حیثیت داره که قائم به نفس خاطب یکی از خارجه به قابل صفتون من از صفت قائم به نفس شخصه و یون که جعلهو به لحاظ تمام الموضوع یعنی این سفر رو به نظر سانوی نگاه بکنه این رو تماما موضوع بکن ولا معنی من تصبر جرد کاشفیت لعن الا ما داریم کاشفیت موضوع منادشون معنیش منادشو منادش اینه یعنی معنیش اینه که بیاد به که اینجا حالا نبیرم ولی اینجا عبارتی در اونه هاشیه داره که اینجا نبیرم شون نمشته به این زحاب یه منذریتی داره این منذریتش رو میتونه تمام موضوع قرار بده یعنی به عبار از این خورا علیه ایمون نور رو و نور رو لبیره و منذر رو و منذر رو لبیره میتونه این کاشفیه کاشفیه منذریتش این نگاه بکنه و این رو و ایشان اشکال بزنه باید این تربیر ایشان تربیره به اصلاح کاشفیه یا منذریته مرموم استاد اونهای بزرگی آقای نگه خواستن در منطقه اصول جلد دوم اگه ملالبه بکنم، ایشون به تفصیل بیشتری یعنی مدهب آزیه های استادشون شده بیشتری دادن فقط ایشون در اونجا تعبیر به معنای حرفی و اسمی کردن یعنی اگر قطع لحاظ بشه به لحاظ طریقی این رو حرفی قرار دادن اگه شما سعی Laravel شما 20 قرارداد اینا رو تحت مناقشه بكونه هرگز نمی‌تونی دیگه یه تبیری این تبیرا واضیا نداره و هر چند اون که تبیرا دلیل دیگه داره البته یه علم آوردن بحثی شما خیلی معتبره بعد ایشون میگه اصلا مراد از این که به نظر حریه موضوع میشه همینه این مندرجیت یعنی به نظر ثانوی این مندرجیتش رو موضوع قرار میزید. ولی ولو کانل لحاظه اون من حیث و موجب رفت اگر موجه این همه قفلت میشه بهش لحاظ نمیشه به حاضر ها جزر موضوع ایده موضوع هم نمیشه اگر کشکنه به منوانی میکنه شما که جزر موضوع رو قرار خب اگر جزر موضوع نمیشه یعنی اون دیگه که و جز از موضوع ازه ازلا هر برین امکان را از بعد احتیاج ازدخیاج موضوع علاقه به تقدیر ایلا لحاظهی به نفسه و ازادهی و قیوده به هر حال اشکال مرموم آزیان را تحمید اشکالا در منطقه ها بردن اینه که اگر شما تمام موضوع را منکر شدید جزء از موضوع اول منکره بشید شفرمون به هر حال سوال اینه شما علم بود به لحاظ تریکی خوب درستیم به لحاظ مندولیتیم میشه لحاظ بکنید یا نه؟ اگر میشه لحاظ بکنید خب کلوموزو اگر نیمیشه که هم میشه چه فهم بکنیم؟ اشکالی که هست اینه اون لحاظ قابل لحاظ هست این خلاصه اشکال من محاضی اصلا خدمتشون که این مفتر دید که من محاضی رو پرمونده اگر بخونید به این بگیم که این فی نقصه مستحیل نیست این لحاظ لحاظه مثال ساندی سالست و توسعه در مقام لحاظ مشکل نداره انصافا به مقام لحاظه اما این عرفی نیست این حتمروازی ها قدسال الله نقصه انصافا عرفی نیست عرف با این معافلت نمیکنه، به خاطر این که شما وقتی بید که مضع موضوعی اخذ شده به نظر تریقیت تا گفتیم تریقیت یعنی نظر از اون به واقع گفتیم اینقدر تمام موضوع نظر از اون خود اون هم نمیسازید سازیم با یه خیلی بالای نفس که حالت تصرفات غلو شبیه سودسودی و آرفاه سودسادی یه شید خاصی با تصور بشه و اولاد در متفاهم و این تصور نمیشه مشکل این اگر تصور عرفی که بایان عرض کردن مصاله رو که بر موانه های می فرماین غیر از تحقیقه اینیش انصافاً خیلی عرفی خیلی نزدیکی به عرفه و مصاله بر موازی دقت خیلی دکتت می فرماین اما از عرف دور هم از سر کسی دکتت از عرف متعارف دور هم موظفن که خب اشکال اساسی که در اینجا پیش میاد به اینشان من هست یعنی چه در بحث اعتبارات کلن اصلا اینه یک نقفی اصاسی روی محبولیت فکر نکنید بیشتر روی مقبولیت فکر کنید این بحث های مستقیله مستری نیست روی اعتبارات این بحثات نکنید روی محبولیت بیشترین بحثتون در اعتبارات روی مقبولیت باشه خو خب اگر من قطع طبیعی بوده نشی یعنی واقع در اندر بیه و طبقه درنده طبیعی میشه وقت تمام موضوع برقرار یعنی خود این سفر داره خب به هر حال واقع در نظر هست سوال بیاری. شما به باب بیاید شما به هرجوری آبادی با یک لحاظه فوق العاده ظریفی با لحاظ ثانویه خصوص به قول خودتون در طول خصوصا در آخر صمدا میگیم طبیعی واقع مرده تمام موضوع خودشه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هم باید واقع باشه هم باید خواهی شد موضوع اون نتیجه رو حتام بکنید یعنی خوب دقت بکنید تو اعتبارات پانونی اثر رو لحاظ بکنید چه اثری داره؟ وقتی قطعه طریقی بشه جزو موضوع چی؟ یعنی هم قطعه میخواییم هم واقع این جزو موضوع حالا اگر شد تمام این موضوع این چه تأثیر داره؟ باز واقعه میخواییم ای با قطعی با اون یکی شو یعنی در حقیقت اشکالی که آزیا در آخر کرد دو دو موضوعی به خدا آزیا کرد نه اینکه اشکال دو, دو, دو این قطعه طریقی چون تا شما گفتید طریقی واقعه در نظر گرد اشتا میشه طریقی یکی اگر شما تمام موضوعی خدا قطعه ندن نتیکی چی شو رو تو مقامه شد هم در نظر که از یه هم واقعه خبیشون شده کنم این مرجعش شما باید در اعتبارات قانونی یک اعتبار که میکنی نکته در نظر بگیرید مثلا بحثی از آیا آیا ممکن است شاره یک چیزی رو شرط قرار بده و عدم شما نه نیدون تو جل درسته آیا ممکن است انسان یک واجبی رو نرزو بکنه تا بگید نرد مخوند الله علیه نماز نمازوه بکنه از دیگه گفتنم شما مثل این میشه اینان ما اثره این بخصه شما مثل این ما زده و حتی رو قانونی نیاریم بگید این اثرش چیه اگر اثر داره این معقول اتباه اگر اثر نداره این اتباه مقبول نیست مقبوله غیره مقبوله مثلا شما اگر گفتید من نرد کنم نمازوه بکنم هیچ اثر این نرز ایجاد نکنیم اون چه اعتباریه لقوی بحث امکان و عدم امکان نکنیم اما اگر گفتید من نرزی کردم نماز رو اثرش اینه که اگر نخوندن غیر از اقابه الانی تو برای نماز هست باید کفاره هم باز بدن خب این یه این بسید کفاره نداره برلد نرز کفاره داره لذا خب جهت رو من جهت مهم بحث اینه به جای این تدریقه ها حالا اصلا اینو در پیناسه درست یا درست نیست ارز کردم عرفیت یا نداره اصولا اثر رو بندس آزم و از این راه وارد نشدن در حیات بندس از این راه وارد وارد شد اگر طریقی بود یعنی واقع لحاظ واقع اگر موضوعی بود یعنی خودش پس دو شدن اما اگر صفتی شد که قسم دیگره یعنی فقط صفت قطع در نظر گرفته واقعه در نظر ما فقط صفت قطع پس گاهی واقعه در نظر میگیره گاهی صفت قطع این معبوله اما هر زورم در نظر میگه اونم معبوله اما یه دفعه تمام تمام موضوع همی شده این دیگه که حضر نیست حضر صحیحی نیست انصافت مخلبی رو که به نظر مرموم نایینی را استاد از آقای خوی قدس الله سر را ما فرمونن به ذهن میاد که بیشتر اوفق با قواهد اعتباری باشه تا اون دقتی رو که ما آزیا کردن تو بعد شاگردیشون الان که مطلب رو آقای مرموم آقای صادقایی رو فرمونن آزیا توییتیشون خب تا اینجا این تخصیم بندی حالا برگردیم تا این حساب تخصیم بندی بنابرای مشهور تنش یعنی مشهوری که این آلو تنش شو شد من تاریخ این تصمیم بندی رو یه در در یه خدمتون از از رو کنم تا روشم باشیم اولا از کرده این برس اصولا از شیخ شروع شده این یکی شیخ انصالی قصف و در این برس الهاز مسئله بعدی که خواهد آمد سه برسیم کردن خوبیت برس بکنیم پس اتریحی. قطعه موضوعی موضوعی هم یا به نحو تریحیت عقصید یا به نحو تریحیت به نحو تریحیت یعنی واقع رو دیده به نحو تریحیت سفت نحس رو دیده شیخ در رساله این رو پراندن این که میگم رساله تو نرد کردن اول که شیخ نویشتن چهار تا رساله جدا نویشتن اسم این رساله حجیتون مزن نبوده مقدمتن متعرض قبل الهات قبل شدن در این بحثی که متعرض شدن این مطلب رو فرامندند کی شد سه قسمت مجموع شیخ قرار دادن این یک بحث خودم چون سلسله بحث‌ها بگم شد یواشا شد باز باص صحبت بکنم بعد از اون هم شیخ برای اینکه فرقی بین احسام این دو قسمت بحث بگذارن به اساس تلهی و موضوعی فروند در امارات قائم مقام قطع تاریخی میشه لا اصول یکیش حالا من الف را ببینم الف امارات دوم اصول خوب دقت بکن اما نسبت بحث موضوعی اگر تاریخی باشه اونم میشه اگر موجود صفتی باشه نمیشه این خلاصه نظرشه یک در امارات درک تاریخی میشه موضوعی به نحو تاریخی میشه موضوعی به نحو صفتی نمیشه این خلاصه نظرشه اما, چط... اما اصول خوب اینایت بپرنشون اینکه از جایی که خیلی عجیبه رس و رساله شیخ در اینجا خیلی تشریش داره متاسفانه شیخ اولین بار که نوشتن رساله رو نوشتن ولو اصول عملیه قامت الامارات ولو اصول عملیه. این در نسخه اصلی رساله که به خط خوده یعنی خودو که مرمون ظاهرن بعضها یا تدریج سرموده یا بدون تدریج هنوز برای من هم روشن نیست یه مقداری از این رسائب خودشون رو تجید نظر از کردن از کردیم اون نسخه اصلی چهار رساله جداست اصلا بساطی احتفاق واحد نیست چهار که رسالهشون برشن رسالت و حجیت المدن اصلا جداست بسیار لارهانی رساله این جداست رسالت رسالت الاسطسابیه رسالت الاسطسابیه رسالت, رسالت الاسطادل و تراجی چهارت رساله مستره برشن؟ چون این چهارت رساله اسمتهایی تا حدود زن شیل شیف تصرفات کرده این هم چیسته بشن من نمیدونه چون من این در روی عرض کردم مرموم آقای آشیانی که در نجف و اصلادیشان تحبیل به رساله شیف میکردن ایشان وقتی وارد نجف میشن یک دوره این چهار وساله به قلم خودشون به خط خودشون میگذارند به خط خودشون استنسات میکنن. 10 سال قبل از ذخایش شیخ، این این تاریخ نسخه در آخرش نوشته که 1266 شونش 1268 یک ذخایش شیخ. سال قبل از ذخایش شیخ نوشته از رو از معلوم شده این سری استنسات میکنه و توجهی که من میگویم، ولی دیگه نمیگم. از طورmusein نسخه چاپ کردن ده روایت رو تا اونجایی که من میدونم این ترین نسخه البته شد منحصر به این که ما از شاگردای شیخ رسائل در زمان شیخ نوشته ظاهرا همین نسخه باشه که مدت الانم ظاهرا در دست خاندان میشونه این مروای آشیامی بود نبی این نسخه منو آموز واقعه سر مروای آموز احمد ایشان پسر آشیامی ما که اون نسخه رو دارم نداریم استثنا فعلا کپی کردم اون نسخه پیش من هست. این نسخه را مرمواش در سال ۱۶۰ به خط خودشون نوشتن و خود نسخه یعنی هست. و بعد یه هست، انصاف هم که وقت در یک خط جدیدی در هوا بعد و از جا به خط زدن متن دیگری نوشته در یک قسمه دیم سفر 3 و 4 همه یک سفر را خط دادن یک سفر بطور کامل و در هاشه شمیشون نمیشن این خط خوردیلی است احتمال از نسخه شیفه مشکل کار اینه که در نسخه مرمون این قصول کلمه قصول رو من توضیح کنم در, در نسخه اصل آشتیانی اینطوره، طوره علقصول آمدل امارات ولقصول رحملیه تحبیر تعبیر این اینطور، نسخه اصل بعد یه خط دیگری بالای اصول دونه چون چیز بعد خلاه رو یه خط جدی اضافه کرده خود که اون نسخه توضیح داده نشده در شرحی که ما آشتیانی نوشتن که ازیدن آدم هم همشان تو این شرح ایشون میگه در نسخه اصول بوده بعد بعد اضافه شده توضیح نمیگن در شرح خود که بعد رو کی اضافه کرده اینم متاسفانه خود ایشان توضیح نمیدن برماشتیانی که این کلمه بعد رو چی اضافه کرده اما توی نسخه هست توی نسخه که من دارم فوتوکوپی در نسخه اصلی کلمه بعض اصول دقیق برمودی اینها حالا آیا ظاهرشی مثل بقیه تسیحات از خود شیخ باشه کلمه بعض اصول لذا این محل بحث شده که آیا در عبارات بعدی ها هم که آمده که بعد انشاءالله مبانی علمی شو کاملا واضح توضیح می ده انشاءالله تعالی توی عده اصول مطلعا گرفتن عده هم بعد گرفتن لب ترجمه از شرح نروم آشتیانیتانه واقعا برای ما تجربه که ایشان با اینکه نسخه به خط خود ایشانه و این قسمت های شرم هم در زمان شیفنه اشتنسان مرده زلو دامو زلو تبدیل میکنه در زمان خود شیخ نوشتن تأجیر ما اینه که چطوریشون توضیح ندن که این کلمه بست چطور شده اما هست تو نسخه آشیانه هست و در نسخه هست و مثلا خود معرویم آشتیانی شاید هم علتش این بوده اتناه زیاد نکه عقیقهش اینه که بعد نباشه عقیقه اینه. اینه که همون از اصول عملیه سریعش از اصول عملیه اون کلمه بعد نباشه چون اینکه آیا بعد باشه باشه نوکسی فنی داره اینطوری که لحظ باشه یک زرافت های فنی بسیار لطیفی داره که من ان شاء در اخیرا در بحث هاینده توضیحش میدم به اذن الله تبارک و تعالی چون بی نهایت توضیح هنوزی گفته نشده این هم راجع به کلمه بعد البته مراد از بعد الا تقدیری که باشه مراد اصول تنظییه کردیم در مثل کفایی که اون هم شاگرد شیخه از با ساکفایی اون 6 ماه شاگرد شیخه. با مرموم که نزدیک مثلا 20 سال شاگرد شیخه قابل قیاس نیست واقعا لسان و شیخ مرموم آشتیانیست نه ساکفایی ایشون هم کلمه اصول به کار فقط استثاب رو خارج کرده نگوزه اصول تنزیری بگرد کنی فقط با فقیلن استثاب استثاب رو خارج کرده اما ادهی از اصولیی کل اصول تنزیلی نه خصوص استسها این تاریخ مسئله رو چه براتون عرض بکنم. این تا اینجا غزیه من فکر رو فکر میکنم قبیه این اضافه از مرموم شریفه و تخییر شده از اجرایه به کارو کنیم مطلب رو از قصد و مرموم از بجنودی شریفی نه در تقییرات نائمی مطلب آمده و نه در نوشته خود استاد در منطقه اصول من هم الان گریبا چون استاد ما خب به سال فمری سی و هشت سال پیش های بجناتی کردن سال ازاز به نهر و شار فمری بودشون سکر در یک هفته هم بودن سکته محضی قدس الله هم نفسه و الان تو ذهن هم خفت که ازیش نشینه از نرمه های, های بجناتی لیکن الان تو ذهن هم که در سه دوره اخیل و ای شافعی منتخب اصول در حاشیه بعض تغییراتی که در دوره اخیر داشتن تو حاشیه کتاب منتقل کرد. در این دوره ای که ایشون فرمودن چون اینجا رو بودن به نظرم شاد تو درسشون به ذهنم تو درس آشنا بله به هر حال حدسنی آقای بزرگونی از استاد رضوان الله تعالی علی از استادشون مرحوم نائینی عرض کردم تو تقریرات ناینی نیامده از استادشون مرحوم مجدد شیرازی تحرات مجدد چاپ شده نگاه نکرده این قسمت یا آمده یا نه از استادشون مرحوم مجدد شیرازی که مرحوم مجدد شیرازی می که نسخه صحیح رسائل بعد اصوله این مطلب که مجدد چاپ نشده من فیلن سماعا تحمل حدیث کردم این نفته رو اینجا از بکنم از حدت استاد از صلی اللہ آسید و شریف مرحوم آل بزنازی. از استادشون م از استادشون مرحوم مجدد شیرازی که نسخه صحیحش اینه البته مرحوم مجدد شیرازی هم با عنوان واقع و شیخ بلکه بالاتر با واقع بم قل و شیخ حساب میشن بیشتر رساله شیخ ارتباط روحی بسیار عمیقی بین مرحوم مجدد و مرحوم شیخ وجود داره این مؤسسات خیلی وسات لطیفه و جای احسالت داشت تا الان چنین بحثی نیست. قرار مرحوم سید مجدد شیرازی فضسا این قضیه سال گذشته یه معروفن باکو مرحوم سید شیرازی قدس الله سرر یا بقول نجار بزرگ مرحوم میرزا بزرگ در فرمودن در که در نسخه صحیحه شیخ این کلمه بعد هست. از کلم اجل این شما اول به خاطر اجله این مطلب بنا بر صحتش چون من فعلا نسخه تاریخ 18 سال قبل از شیخ رو دیدم اونجا اصل نیست بعد نیست و بعد اضافه از شده احتمالا مراد مرحوم میزدای شیرازی هم همین باشه که شیخ در اواخر تفسیر کرده. به هر حال این یک بحثی و یک ذراستکایی هم تو خود بحث هست و هم رو مسائل دیگه که بعدش ان شاءالله تعالی در خلال ده ساعته چون عجیب اینه که اون اینکه مرحوم مصطفی بجنودی باز ذراستکایی کردنشان نهمونتا منتقل شده نه در تعلیقات مرحوم نایینی هست. اینها رو ان در خلال بحث عرض می‌کنم که ان شاءالله نافع و مفید باشه. این هم بحثه به اساس سیو پس اون بحثایی که در اینجا هست یکی تقسیم اقسام که آیا دو تا است سه تا است که در ظاهر عبارات شیخ سه تا است یکی دیگه هم به اصطلاح در مسئله این که این اثر به که ایشون گفتن امارات ظاهر عبارات ایشونه ایشون امارات رو در دو قسم مؤاخرا مقام تلح میشن اول دیگه دست دیگه هم هسته باید آسان قبل از اون مقرد می میکنه اون بسیدی این که کلمه قامت مقام یعنی چی؟ قیام مقام او یعنی چی؟ من مواشت یعنی یک معنای خاصی داره لسان و شیب بغاره خودش. که بعد این شاده هم خواهیم داد. و آیا مراد شیخ انصاری تمام اصول عملیه است یا خصوص اصول پندیلی و کدوم درسته و زیر بنای علمی و نکته پنیه بحث چیه اینش بودا در شدال بحث وارد متعرض میشه و اما این را دی بشید بعد شیخ که داده شد توسط صاحب اون قطع موضوعی که دو بود چهار قسم شد چون این مرمون شیخ موضوع که از به نحو طریقیت یا صفتیت نحویت در کفایی آمد که هر کدامم یا دو در موضوع یا تمام موضوع این چند تا شد پنج قسم شد بعد در صفتیت یک یه تخصیلی با در کفایی آمد یا صفت فاطئه یا مخطوعه این تفسیر صفت با و مخطوع بعد از صاحب کفایی جا نیختب پس بعد از کفایی به جای سه قسمی که شیف فرمونن پنج قسم شد بعد از صاحب کفایی مشهور بین این علماء. همین پنج قسم شد لکن یک قسمش تشکیل شد یعنی مثل مرموم نارمی مرموم استاد اون که تریجیه تمام موضوع باشه تشکیل شد تو چهارم، چون اگه پنج قسم یکیش کم شد البته مرموم آرزی باز به همون پنج قسم قبولی کردن به همون پنج قسمی که مطرف شد این مطلب بعد در رتوه بعد از مرحوم سالکفایی یه بحث دیگه مطرح شد به خلاف این پنجره که اصلا گفتن دو قسمه شیخ هم کلن گفته دو قسمه اصلا سه اسمی و این ظاهره باید شیخ سه اسمه البته دقیق بکنید من خیلی مسرم ما همیشه در بحثای علمی خودمون در اصول و به اصول ما و سنیه و فرمیه و جدیدیه ها اصول در دو محور بحثاییم یکی فهم کلمات یکی تحقیق خود مطلب. ما خیلی رو فهم بحث کلمات خیلی به طور طبیعی باردیم. اما اینجا ببینید علماء ما چون اصل مبدع شیخه اصلا چون بحث مفرح ندوده این اختلافاتی که از شیخ آمده شون اینشه مؤسس این ترکه این ترکه سلسله، این اصل شیخ لذا منشعه بحثی که پیش آمده یه مقداری روی عبارت شیخ تأکید شده من اونو آی در قمکیر عجیب واقعا من هست چیز میکنم میدن وادیتی از تضایی های نادره کاری خصابش رو ایشان تصرف میکنم در عبارت شیخ ایش که میگه اصلا شیخ دیگه قرد دو تا سیاه طریقی یا موضوعی دیگه موضوعی رو دو تا نمی حالا ظاهر ارواز شیخ کرده میتونه که موضوعی دو تا هست من اونو آی بود جدی میبهرمان نخلا یا طریقی سا موضوعی تمام شد بیگه ما دیگه این از اون قرد موضوعی هم دو قسم باشه پس اول شیخ سه قسم پنده هم در کفایه تنش آمد نایی ی آل خویی هم گفتن 4 و آزیاب 5 تا. آل روزی میگن نه کلا دو تا است. مثلا هم مراد جدی شیخ دو تا است. مراد ظاهری کیسا تا که انسان اون که تالو مراد از حدودی ترویج کن، این سه تا بود. آل بود جدی اصرار دارن که دو تا دیگه قطع موضوعی به دو دست تفصیل نمیشه تریج موضوعی. اون معنا ندارسن. موضوع یکیه. و سعی میکنن کنن شواهدی عبارت خود شیخ رو بردن الان مافه و من احتمال می که چون یک تقریب نگاهتم تقریب دوگام که در من حاصل اصلا رو هم همین نقریه کردن و نقطه فنی گفتن و اضافه بر او عبارت شیخ رو هم توجیه کردن از اجایب کار اینه که همین مطلب و همین توجیه و همین نکته در کلمات مرحوم معهد آمده اومده. اون کلمه ای که مرحوم معهد اصفهانی ورشه میونه در میذاتن کلا. هر لحاظی مرحوم اصفهانی تماثلی فلسفی داره بر موضوعی هستن که سر در قرار حتی تعاریف فلسفی داره. تعجب اینه که همین طور مرحوم حاج سن اصفهانی قدس الله نعسه ایشون اصرار میده به دو موضوعی دیگه موجودی دوست نمیشه. نظر خودش نظر نداره... اینه که اضافه ی نظر خودشش سر به بازیشه ای رو اینم خیلی عجیب. و توجیهاتش هم مثل هم؟ وای که من دارم هیچ شده از همدیگه لعیب است؟ نه مردم شانس نیستن نظر بزرگی خواهیش. و این آدم بزرگی ازش یاد خواهیم یادش می‌دم. در که دارن با مبادسهایشون. الان می‌شدم از, از یاد آشناسیم حالا من نمیفهمم فرمم من که مطلع نیستم اما از حجیال من به نظر نه تواد خاطرین شده باشه اما این از اجایبه ازایی های تواد خاطرینه یعنی همون توی که عبادی شخ توجیه کرده هست گفتن نه مراد شخ اینه مراد شخ دوارد شخ واضعه که توتا کرده قطع موضوعی مرموم عبادی اینکه نه مراد شخ اینه همون عجیبه. هم آشانوسهی بکنه همون به اینه همون تو جیر تو عباد شیخ میکنه که مراد شیخ میگه پس بنابراین البته ارز کردن در این جور مبارس یک آیا مراد شیخ چیه؟ دو صحیح چیه؟ اشتباه نسیده نمیز کردن امساط قضیه ما باشیم و ظاهر عباد شیخ دو تا چون میگه اونی که در موضوع احس شده اونی که در بسان موضوع احس شده طرق هر گونه منوال تریبیث و طریق ال واقعه اساساً به نام یک صفت خاصه ظاهره این توحید اینه که انسان ابتدا تاران تاولا رو که ما قدم چند بوده ظاهرش این بود ظاهره واقعاً برای ما تجربه تو دیاگروجی دیه بر ما شانسه این که ظاهره و اما این که واقعاً مراد مرحوم شیخ اینه طریق ظاهری ما غیر از ظاهره عباشه باس برگشت به لسان مرحوم آقای آشتیانی قدسا لا نصر در بحرال ایشون هم دوتا گرسه و من کلاران ارز کردم انصافاً کلمات مرحوم آشتیانی برای فهم رسائل بسیار ضروریه انصافاً اینه اگر کسی به حاضر رو می بدونم آرام مدانی خودشون رو آورده و تثیر برمودن و که انصافاً اون قسمت های شمروزه شون ایشون از آبی این سؤاله نوشتن چرا که ما از کار او پی تو نتیجه نه نه نه از کردن وقت که من گفتم شی هم صبرتی یه حالی معنا داره. اینا حالا اینجا من بس پس یه نگاره بحث که امروز برندم طولانی صحبت کردن برمیگرده به عبارات شیخ و چرا این مشکل دوست شد؟ چون این بحثا قبلت شیخ نبوده این بحثا قبلت شیخ نبوده این بحث آیان برگرده به عبارات شیخ یه مقدار ما کار به عبارات شیخ نده مطلب چیه؟ سوال مطلب این اصیب چرا شیخ این دوزم دوزم اما در مقام اول که برگرده به عبارات شیخ انصاف قضیه ظاهر عبارات شیخ که تخصیم و موضوعی به دو قسم این که ظاهر شد اما این که ایشون واقعاً ببناشیم بوده طریق ما محوم آراشتیانیه چون ایشون اضافه برنی که چطوره 20 سال قبل خدمت شیخ بوده در مجلس درسیشان نبشته می احتمال کرد و می مجلس البر به نظر باید کنیم قریب نیمه دیگه کلام محوم آید برو جردی آتون این انصافت توجیه فضیر نیمزه این انصافت اگه ما باش واقعا هم به ها بوجهی و محفل یک ذکر با آشتینی از ذکر تقاضا اشینی مقدمه شاگرد میشه به لفاظی این در مجید رحمت حاضر شده واقعا من بزرگوار خود مرحوم آشتینی واقعا مرد بزرگوار خدای سبحان اسرام میشه هر سه سب... هر سه سب... بزرگواران مرحوم شهر بسیار ایشون بزرگوار با آزادی ایشون چون چند تا برده میشه مدتها خیلی هم واجد و خیلی هم واقعا فوق العاده الله پس راجع به عبارت شیخی یک ظاهرن این قطع موضوعی دو توجیه ها آجورو جیبی و سن فقط توجیه انصافا یه توجیه رو نمیشه قبول بکنیم این روزی به آن چی از اصول العملیت یا بعض از اصول این شواهدی رو که من تقام نکردم کاملا واضحه میشه که شیخ بعدل اصول نمیشه البته آخر هم هم در نسخه خطی به خط آشتیانی بعد اضافه شده در حاشیه در بالای کلمه و هم به اون ای که از مرحوم استاد از مرحوم ناهمی از مرحوم مجدد شیرازی قدس الله نعشه که در مصیحه است بعدل اصول این یه مقدار ما امروز شیخ کار کردیم قرارو تحقیق کنم درضا الله